شما زور توکتتون میره من نمیره میوه انبار می قیمت تعیین می کی چی بفروشه چی نفروشه را میندازن. حلش می‌کنی 20 درصد. 20 هستم که همه میگن خلم، میوه باغدارو یه جا میخرن، انبار میکنن هر جوری که بخوان میریزن تو میدون، با هر قیمتی که بخوان. من که زیر پله دارم، ولی شما چی؟ چرا باید بشینید پر پر شدن سرمایه‌تون رو ببینین، گردن قلفتن؟ منم هستم، تو هم بودی، یا میایید با هم میریم تو شکمشون یا خودم میرم. بزن فروختش به معمور حنیف حنیف داداش بیش قشنگم الان بی درد سر باشو با. و حرف من گوش بده بی درد سر باشو با. نگره هیچ چی نباشو منیجه من با من رام کردنش با. نمیخوام رامش بشه، نمیخوام زنش بشه دنیا به خواست شما نمیچرخ، آقا چابوش جام خوروش رو باور کنم دستم حضرت عباس رو میخوایش باید معمول ورداشتی و منتظر بودم ببینم ات. فکرم کنم خیلی حرف دارم باید بزنم خیلی داد باید بزنم خیلی باید ولی الان میبینم هیچ حرفی ندارم بلنشا بلنشا نمیخوام اینم شوهرم یه موش بوده بلنشا میدم بوده نفست فکری هستی هنوز از اون شلخون صفخون کردنت گرفته تا اینکه راه افتایی دوماله طلاق دادنم پیته بنزین تو خونم خالی کردی بچم رو داشتی آتش میزدی نمیدونستم تو که نمیدونستی پس حرف چیه حرفم چیه خرف خدا رسیم بعد بفرسامت یه جایی که محراب دستش به نرسه تو هم دسته به محراب نرسه ازت چکایت کردم پولیس دمه داره میری تو میکشی بعدش بر میگردی میریم طلاق میکرد منیشه میره مجازاتشو میکشه تا موقع داداشتو هم آروم شده بر یاد زندگی میکنی خیلو آراز یه داد سر بابات زده میخواه ازش طلاق بگیری و این داشته بچه هم آتیش میزده میخواه برگردم باش زندگی کنم کل خود از آراز تو قلط میکنی قلط رو تو کردی Halif'ta iyi. Baba Halif bana. Halif bana. و كتبت رو آگاه نمی‌م میاد پروژه رو حلش میکنی ریسا یت بدن من دارم بهش خدمت می‌کنم سادشتو مال این حرفو نیست میخواد داره شما رو تهدید کنه آخه نبود مهتاب تو خونه خودش اون کار عاطفه بود وگرنه یارو مال این حرفا نیست مال کدوم حرفایی بچه آتیش بدن من فرستادمش از ایشون شکایت شده حنیف منم می میخوند دوشه بگم چرا من منیجر گذاشتم کنار باز خاطر تو تو محتبا نمیذاری کنار باز خاطر من من حنیفم که جونم هم برات میدم جونم هم برات میدم خودتش بگی هر کسی برادرش یه جور ثابت میکنه دالا برای ثابت نکردم همه میدونن کجای زندگی می؟ همین همین آره آره نقطه ضعفه من محتابه ولی برای تو چیکم گذاشتم که برون میاری خیلی سخت نگیر خوبه هلیف ماشینا هلیف هلیف هلیف هلیف هلیف هلیف هلیف که میرن تو مجلس خط میگن قضا چی داریم حرف من عروسیه رفیقم دوستم عزیزم تو کجا بودی اون موقعی که داشت بچه من آتیش میزد داداشم من خروز جنگی و فراری به چی فکر کنم به به عروسی؟ به عروسی با, با مننت من بچه داشتم هم میخواستم خودمون داداشش گفت، خواهرش گفت خواهرش منم هستم بیرون بادم دوشتم میرد باشتو ببینم ساعت داری؟ اگه داری نگاه کن چون به یه ساعت نمیکشه نمیذارم اونجو باشه دذار همیشی رو بلادی خودشو تیگ کن من اگه نظر نخوام کیوبت ببینم آرازو بود. آراز گم شده مریضه دارم یه هم خونه صنف بردارم برم دادشم آزاد کنم اگه خبرتو ازه نداری خدافز بد داری تنها میشی آقا چاوش بد آخریش حنیف بود این جدیدتر این خبرمه خبر خوب چی داری ندارم محتو پیگیره دلیل رفتنش از خونه نیست شما بودی پیگیر نمیشدی؟ مگه من بچهم مگه من بی مغم مگه من صادلوغم از خونم فراریم دادی بعد هی به بهم بقبولونه نیست سنگیم سنگ بنده بنده بنده و نگران بچه تو شکممه ای؟ عاطف جون آبجو خانوی آبجو خاوم همه باش ماسبندی رو انداختی آثمانی کنی کارای داده تو؟ دیگه داره کم کم بهم هم بر بخورده منم بهم هم برخورده نه حرف نه دلیل فقط راه بیوف از خونه فرار کن بیا بیرون چرا چی شده چه گندی بالا آوردی که امنیت ندارم تو خورم این بار موضوع کیه آراز، ستار، رسول، کریم بوسان منیجه منیجه چی؟ همین قبل بدونی بسته این را برام کافی نیست که اینجا نگرم داره به میگی چی شده یا نه ja arda nulis. بیمارید نه این فرم رو پاکنید بریشتن محتم که چیزه نفهمید من اصلا موندم این بیمار است شما رو تلفال خونه ما رو از کجا پیدا کرده من از تو بیشش در بردم سکته قلبی کرده افتاده بود کف حال من نسوندم اینجا تو تو خونه چابه چی کار میکردی دبا کردید سب تو کی هستی؟ برادران زنه ای؟ چی کار کردی که دادوشم به سکتره سوندی؟ باشه باشه باشه باشه بس ببینم کجوری اون سر شد جونه برشو خوبی؟ زنی میزنم آمبول از توید آقا درمان خونه چکار میکردی؟ آقا ببینی توالی شده زنی میزنم خودته؟ ببینمت نکنه دوزی چی بی وجود. حالا کم. خودشم زدی به موش مردگی. هاشو. با تو فکر کردی میذارم منیجر طلاق بده، خون به جگرش کنه. فلان نمیشی؟ با تو هم نمیشی پس. فلان کن. فلان کن. فلان کن. تا خودت خون چگیره. فلان کن. فلان کن. لا خونین شد پس چاوش سکته کردیم بازاش کردم تو جلخونه چاوش چیکو میکردی امر آقامو ترس میکردم چه عمری؟ آراز پیدا کردم لاغر فیدن شهری که هست رو پیدا کردم کجاست؟ چجوری از رو موتوری که خستی از مکانیک پیست خریده رو بشو زدم این شب باید گذاشتی کافه؟ موتورش عذیت هم بیکر گذاشم هم اینجا بمونه بادرم که شبا تو خونه تنهاست نمیتونم بذارمش بیام خبتم صبح بیام موتور رو درست کنم شوام یه نفر گذاشم توی کافه مراقب باشه مطمئنی ازش هسته رو برید به سلامت تنها بسیار خوده تمام شهر خالی اینجا چه خبره؟ دوز نومده؟ میخواستم موتور قایب رو ببرن نساشتن God در با درد و از شهر خود و راهی شدم رفتم به گورم ای تو تر کن تو کانون خوا خون با گلا بر تو گلا بر تو Tehgi kusikame به قولی که با آقامون دادی عمل میکنم دروغ شدم دیگه فقط حرف بابامون نیست حرف اینکه چی شد و چه اتفاقای افتاد که به اینجا رسیدیم نیست حرف دب و مرافع هم باراز نیست حرف اینکه من ترکش کردم یا اون ترکم کرده نیست حرف اون دیوار کشته شده تو بچره نیست حرف حرف عشق اش... حرف حرف نیاز من نیاز دارم اون به نیاز داره چاوش بهش نیاز داره آقا. نمیشه نمیشه چیه نمیشه دکتر مگه نگفتی به حوشه دکتر باید بدونه باید بدونه یه کاری بکنه آقا سکتری قلبی رو رد کرده چی رو باید بدونه اگر اون چیزایی که شما نگفتی من به این مریض بگم سکتری دوبوم زده باز میگم دوستارا نگفتم نداشته باش من نیازی نیست دیگه ما نمی‌تونیم با هم پس سه روز بشه 0 روز بعد حرف از طلاق بزن تو طلاق هم بده من منوشن طلاق می کنم اون خونه باقیه شهریار رو ما رد میگیرم حسابه بانکیتو چاق میکنم فقط این داستانم سه روز عقد و طلاق و از این گوش با اون گوش نرسه مگه بچه نمیخواهی؟ میگم من چرا بچه نمیخواد؟ ای به حسین گفتم نیست ای واسه محتوای تو واسه من جون سخت محتوای با تو زندگی منه محتوای تانا زندگی تو پس چرا اومدی من من دنبال تو تو دنبال من من اومدم دنبال تو تو من تو اومدی دنبال نداری خاطر اشتباه بود با هم بودنمو اشتباه بود میام بالو سر زندگیت میو بالا سر زندگی آ غلطی بکن میو سر زندگی وقتی خراب میشی می دیدی می نه میو سر سرت میو سر زندگی اون کی بود مادر تو از زن غن غدا مریض راه بالا کی خبر کرد ها آقای شیروانی همینه چیز بهتر درست هم شدی نوخور چاوش؟ لحنت برشوید خدا بیام شوهر تو خدا بیام عرض نمیخواد بگی به جش دو بار میرفتیم ملاقات رشکل سنهه این دقیق نکند این زنگیم سراغش با پیغام پس از چاوش گرفتم ولی این هم پس نداد شوهر خدا بیام عرض با چاوش کار میکرد فقط چاوش خوب میشناخته شو. از کاراش خبر داشت توکل گفت سکته کرده یه حوش شما زن زدی باشایگه داشت همه کردی اومدی اینجا توکل خواست بیام اینجا اگر نه ازاش خوشم نمیاد منم راضی نیستم به خصوص به مرگ شوهرم چاوش بله برم میدون بالا سر های شوهرم که رو تخت بیمارستانه اگه یه وقت بخ... از رو تخ بلند نشد واسه باز روها مشتری پیدا کن میفوشمشون <تصفح> حالشون خوبه نشه. زربان قلبش اون دوباره آل اسمی نشه حتاقل با خبر بعد وارد نشه مگه که رفته یه خانم میگه زربان قلبش پایین میشه اگه یه زن میامد سراغ من گفتن نه دو به فرص زربانش میگه زبه هم تو گوش میکردی نگران حالت باشم یه زنی که زرمان قلبتو برده بالا انگار متوجه نیست دار خانم میکوشیدش بفرم این برون رو تفرم خانم با شما منم همینه گفت این که زنشه؟ خبر داشتی؟ خلی؟ اصلا به من چه؟ اگه به تو چه پچه رایی میپرسی؟ یه جوری بود زن تیمور؟ زن چاوش آه محطا نه بابا زن خدا تیمور الان زن چاوشه مف گفته به منم گفت ریختم به هم یعنی چیه دورایی انگار خیلی دلش فقط چاباش بمیره خدا نکنه اگه من گفتم بکنه میگم زنش اینجوری بود باب با روز زبون گفته زنشم خلاه همه تو بگو زنشه زنشه زنشه با همون زبون به زنی زده گفته زنشم تو هم حل اگه منو برشیه بردی اینجا باب اصلا به فکر مشتری باشه واسه حجرا رفت میدون نایدو برو کنا هنو سه سه عجره دیگه مونده کی باز گفتنه اینجا رو ببندی حقم به این میگه هفته حقم از شوهرم <dynasty> با زن اون کیمون خداوی امروزی تو خط مشکی من زن چابشم بازه خبزنگو خانو بازشکا چیه این ماس بایستی تبوشا بکنی یه قفل رو زن کنن آقا میگه زنشه منام استالینم عقلت چی میگه بایدش کن خانم سه دونگه این جمال منه, منه زنده اومد از بیمارستان بیرون خودش میاد باز میکنه مختیه سراغ دونگه زن نموند؟ آقا شاوش سکته کرده ایداد این چیه این چیه یعنی من بکرده انقدر بیقانون هرکی از را رسید قفل زنجیر بزن به هاشر آدم و شما چی کاره این زنگیزا معمور بیاد زنه را دیدیم زن تیمور بود یادته؟ حالش چطوره؟ انگاه تو باغ نیستی تیمور تو زندون مرد زنده که بگیم حالش خوبه یا بده شاباشو میگم اه ای نگه یای چی یعنی زنده یا زمانم لال طوری شده آدهر چه ما این چاوش خوبه فکر فدیه ها چریم کسی رو بخواست فیلن که رو تخته من به ببرمین معارستان شیربادین رو چشم، بفرمون عوضه چی میشه؟ م. بدروی چی میشه؟ این فشار من حرفای من حرفای آراز، شهادتش، دوریشون همه اینا پت قلبه آخه سرم سر کل سکته پیدا بشه بریم، بفرمات همینونم و امرو بیان من زن چاوشم زنشم زنشم نبودم جراب نداشتیم دست بایم بزنید داری جراز؟ شلوغش نکن خانم شلوغش نکن تنها رو راستی چابوش محتوب زنشه عاشقشه رو محتوبم زن نمیگیره چشم پین آموزی هیش کس نیست حالا این خانم با چه روی اومده محرکه میگیره اللا و علم حالا معلوم چی پیشش گروهی داری؟ اینجوری قرص پایستا دیپاش بذاری میزنه هرچی میخواد جا رو کنو بردار بردار آدمیزا تو لب گور بزرگتر میخواد محکم بای خودت پایستا بزرگترش اون پیداش پیداشت بابا اول واسه خودت پیداش کن با محرب میخونه من میگم تو میخندی تو میگی من میخندم یکاری یک میکنی با خیال راحت برسر سربستش تو طلاقم فکرت رفته کمک آرازه میخواد کما که برادر جان من یه گفترم گفت چیه جنزلشی برگرد و بیا دل تنگ دیدارم بغز شب تارم من هر چی دارم از تو از پروردگار دیدم او شفتم او شفتم